بسم الله الرحمن الرحیم المیزان و سرفی میزان سرف در این درس میخواد بگه هر فعلیه میزانی داره و آموزنده رو بیاموزد که چطور حروف اصلی رو تشخیص بده اگر اعلالی رخ داده رو تشخیص بده و چطور این فعلها رو میزان کند ترازو شد کند وزل کند که کدوم حرف اصلی است و کدوم یکی نیست و کدوم یکی اعلالی درش رخ داده است از اونجایی که اکثر فعل ها سلاسی هستند، سه حرف در میزان در نظر بفته فعال الله فعاله این میزان ما هست. ما میشه نگاه میکنیم موضوع اون فیلی که وزنش کنید چه حرکتی داره در میزان حرکت های میزان رو بر اساس موضوع تنظیم میکنید مثلا شریبه میزانش میشه فعی له پس شریبه شین زیر فابیات را زیر عین با زیر لام. به عبارت دیگر زمانی که بخوای میزان یک موضوعی رو تشخیص بدیم به جای فاولفل اگه سه حرفی بود فا می نویسیم با حرکتش به جای اینولفل غینو می نویسیم با حرکتش به جای لابولفل فل، لابو می نویسیم با حرکتش مثلا به جای شریبه می نویسیم فعیل به جای کرومه فعو به جای ف فعا در ربایی یک لام دیگه اضافه می کنیم دحرجه بجای دال می دوستیم فع بجای حا عین به بجای رای بعدی لام حرکت دار و بجای جیم یک لام دیگه دحرجه فع لا, لا دحرجه بوزون هست فع لالا هست در همون فع ل لود سفر جل ایرم خماسی هست خماسی مجرد سفر جل چند حرف داره؟ سیم فا را جیم لا 5 تا می جای سیم لیسیم فا می جای فا می لیسیم جای را لا فعل به حسب ما میمونه دو تا دیگه جیم و لام لام رو اضافه میکنیم از آخر دو تا لام که اضافه کنیم میشه فعلل فعلل سفر جلل میزان هست فعلل سفر جلل میزانش هست فعلل هذاب شع در هذبه چون آنولفیل تزئيف هست، در میزنهم رو تزئيف میکنیم، بشه فعله. فهمه فعله، قسمه فعله. لاعبه در لاعبه بعد از فا آنولفیل بوده بر اساس بوده لاعبه. در میزنهم همین کار میکنیم بعد از فا علفی میاریم، بشه فعله. پس در لاعبه و فعله علف اضافی هست. در حذبه و فعله یک اضافه اضافی بود. این صرفه در این سرفه چی اضافی هست؟ لول بعد هست لول همزه صعی و رای و اصلی هست میزار هم بیاد این فعلا استخبره استفعلا القوائد یوزن و المجرد وزن کرده میشه سلاسی مجرد بواب الفا من فعلا مکان الحرف العول چطوری با قرار دادن فعله فعلا بجای حرف اول مثلا در شریبه بجای حرف اول فارو قرار میدیم ش بشه و والعین مکان الثانی فعل عین رو بجای حرف دو هم بیاریم ف ری واللام مکان الثالث لام رو بجای حرف سفون بیاریم ب بجای ب بشه فعی و تضبط احرف المیزان على حسب حسب زبط احرف الموزون دائم تنظیم میشن حرفهای های میزان بر حسب تنظیم بوده به حرف های موضوع اگر فاولفل در موجود فتح داشت در میزان فتحش میدیم کسر داشت در میزان کسرش میدیم لابلفل فتح داشت در میزان هم فتحش میدیم شعری بر وزن فعی له قمر الفعل با این قاعده دیگه راحت تشخیص داده میشه که قدوم حرف اضافی هست کودو بیست زمانی که دهرجه رو زیر فعله بیاوریم تشخیص میدیم که این ربایی مجرد هست حذبه رو زیر فعله بیاوریم حذبه رو زیر چه بیاوریم فعله ف و اصلی است یک ایم میبونه اضافی در حذبه هم که زیری که از این تا عین ها هست اضافی هست در فعلا لاعبه در فعلا کدوم اضافیه فی لام که فقط اصلی هست اضافیه پس در لاعبه الف اصلیه. در این فعلا علف و لور اضافیه لام اصلی پس در این صرف هم حمز و لور در استفعاله همزه و و تا اضافیان فا و عین و لام در استخمره هم جدی این شد میزان خب قاعده هیچده میزان رومایی و خماسی مجرد رو توضیح ده یوزن ربائی و خماسی مجردان. وزن کرده شد ربائی و خماسی مجرد مانند ده حراجه که ربائی مجرده تو برواز فعل لحظ یک باب داشت درهم فعلل سفرجل فعلل تحرن فعل رمایی مجرده درهم اسم رمایی مجرده سفرجل هم اسم خماسی مجرده یوزنو الرماعی و الخماسی و المجردانی کرده کردن بشون و خماسی مجرد بزیادت لامن في الاول با اضافه کردن لامی در اولی یعنی در رمایی درهم موقعی که میزانش رو پیدا میزانش زیر میزانش ببریم میزانشی میشه دی میشه فی ر ساکنه فع ح حرکت داره فعلا مین فعلا لونه درهموت آخرش که خب با توانجب نخشش در جنل حرکتش مشخص میشه پس درهم میشه فعلا فعل، چرا یک لامو اضافی شده؟ خاطر که ربایی هست دو تا لام داره این دو تا لام هر دو تا اصلی هست میزانش شمیده هست فعلال هست سفرجل فعلل فعلل پس ربایی و خماسی مجرد با اضافه کردن لامی در ربایی و دو تا لام در خماسی بر حرف های درست میشه. اصلش فعله هست. چون اکثر اسمها و فینها سلاسی هست. ولی ربایی رو زیر فعلا بدوسیم حرف های ربایی چارت هستند. فعلا ست هست داره. مجبوریم یه لامی میگه ربای در ربایی بیاریم. درهم فعلا دو طلاب داره. یک لام رو با اضافه کردیم. در سفرجل یک لام که مال فعلیش هست دو تا حرف اضافی می گوره فعل سفرجل دو تا لام پس ما اضافی کنیم بشه فعلل لوزده با کالت مزیدتا مزیده بتضئف حرف زمانی که کلمه مزید با تضعیف حرفی باشد مثلا حزب و فح مقسمه در حزب حذب تضعیفه در میزان هم این کار بکنید بقیف الحرف المقابل له في الميزان. در میزان هم حرف مقابل حرفی زیر رو که زیرش قرار میگیره تزعیف میکنیم حذب فعلا حذب فعلا اذا کانت الكلمة مزیده به حرف زمانی که ای، مزید باشه به تزعیف یک حرف یعنی یک ضعف الحرف مقابل له في المیزان حرف مقابلش در میزان هم تزعیف میشه که اینو توضیح دادی قاعده نیزان مثل حذبا و فهما و قسمه فعلا بوده در میشه فعلاه میزان فعلا فهما قسمه فعلاه آئده بیستون اذا اشتبنت کلمه تو على حرف زائد و زمانی کلمه یک حرف اضافی یا بیشتر از یک حرف اضافی داشته باشه ماندل دللاعبه انسرفه استخبره لاعبه یک حرف اضافی داره انسرفه دو حرف اضافی استخبره سه حرف اضافی وضعات زائد و مکنفه میزان قرار داده میشه همین حرف اضافی به جایش در میزان لاعبه فعله میزان ما هست میشه فعله انصرف فعلا میزان ما هست میشه انفعلا استخبره فعلا میزان ما میشه استفعلا پس این موضوع رو میزان بودن برای تشخیص حرف های اضافی و حرف های که در دست بعدی انشاءالله خواهیم خوند